فصل یکم ما از کجا آمده ایم؟ امروز نظریه تکامل تقریبا همانقدر مورد تردید است که نظریه گردش زمین دور خورشید اما هنوز مفهوم کامل تکامل داروینی را بسیاری از افراد آنطور که باید متوجه نشدند هنوز جانورشناسی یک رشته فرعی در دانشگاه محسوب می شود و حتی آنها که در این رشته تحصیل می کنند تصور درستی از اساسی بودن اهمیت فلسفی آن ندارند. فلسفه و رشته هایی که با عنوان علوم انسانی شناخته می شوند. هنوز طوری تدریس می شوند که انگار داروینی وجود نداشته است. بیشک با گذشت زمان این وضع تغییر می کند. در صورت هدف این کتاب طرفداری کلی از نظریه داروین نیست بلکه در اینجا نتایج نظریه تکامل به خاطر موضوع خاصی مورد بررسی قرار میگیرد. منظور من بررسی زیست خودخواهی و ایثارگری است. جدا از جاذبه علمی این موضوع از نظر اهمیت انسانی مورد توجه است. به نحوی با تمام جنبه های زندگی اجتماعی ما به عشق و نفرت، ستیز و همکاری دهش و دزدی و آز و سخاوتمندی ما مربوط می شود. این ادعاهایی است که در کتابهای درباب پرخواشگری نوشته لورنز قرارداد اجتماعی اثر آردری و مهر و نوشته ایبل ایبسفل دنبال می شود. ولی مشکل همه این کتاب ها در این است که نویسنده های آنها کلن و در دربست به اشتباه افتاده اند. چون او ساز و باز سازوکار تکامل سردرنه‌ای برده‌اند. آنها به این فرضیه نادرست رسیدند که نکته مهم در تکامل صلاح گونه یا گروه است. به جای آنکه صلاح فرد یا ژن را مورد نظر قرار دهند، از اجایب روزگار این که اشلی مانتگی و لورنز را به باد انتقاد می که فرزند خلف متفکران طبیعت چنگ و دندان سرخ قرن نوزدهم است آنطور که من از نگاه لورنز به طبیعت برداشت می کنم نظر او در رد کردن عبارت معروف تنیسون تفاوتی با نظر مانتیگو ندارد من برخلاف هر دوی آنها فکر می کنم طبیعت چنگ و دندان سرخ لب به کلام درکیست که ما امروز از انتخاب طبیعی داریم قبل از اینکه وارد خود بحث شوم، مایلم به طور خلاصه توضیح دهم که این چنو بحثی است و از چنو نیست اگر به ما بگویند فلانی عمر دراز و پربرکتی را در دنیای گانگسترهای شیکاگو سپری کرد ما حق داریم درباره اینکه که طرف چگونه آدمی بوده حدسهایی بزنیم ممکن است خاص بزنیم آدم خشن، دست و هفتیر و دارای قابلیت جذب دوستان وفادار بوده است. این نتیجه گیری ها ممکن است از خطا بری نباشد ولی در هر صورت ادم می تواند در مورد شخصیت کسی که درباره شرایط زندگی و کام روا شدن او چیزهایی میداند گمان زنی داشته باشد. بحث این است که ما و همه یه حیوانات دیگر ماشین هستیم که توسط جننهامان ساخته شده ایم. ما مثل گانگستر های شیکاگو در یک دنیای پر از رقابت گاهی در طول میلیون سال در نبرد با زندگی پیروز از میدان بیرون آمده. این قضیه ما را وامیدارد که کیفیات خاصی را به جن نسبت دهیم. من استدلال خواهم نمود که صفت غالبی که انتظار داریم در ژن باشد.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 واجیای خاصی و محدودی که در جمله قبل آمدن بار ویژه ای دارند برخلاف آنچه ما دوست داریم باور داشته باشیم مفاهیمی مانند دوستی جهانی و سعادت هم نوع که کلی یک گروه را شامل شود در تکامل جایی ندارد این توضیح مرا به نخستین نکته مورد نظرم می‌رساند یعنی به اینکه کتاب درباره چه چیزی نیست من نمیخوام از اخلاقیاتی که بر مبنای تکامل باشد جانب داری کنم. بخوام بگویم چگونه تکامل صورت گرفته است. نمیخوام بگویم ما انسان ها از لحاظ اخلاقی چگونه باید رفتار کنیم. روی این موضوع تأکید دارم. زیرا میدانم این خطر وجود دارد افرادی که تعدادشان هم کم نیست، منظورم داد درست متوجه نشوند. آنانی که نمیتوانند بین گفتهی که باور دارند با جانبداری از آنچه واقعیت دارد تفاوت قایل شوند. احساس خود من این است که اگر جامعه انسانی فقط بر پایه قانونهای بیرحمانه ژنی جنی باشد جامعه بسیار ناخوشایندی برای زیستن است. اما متاسفانه هر قدر از چیزی اظهار تأسف کنیم در واقعیت تغییری پیدا نمیشود. منظور اصلی این کتاب این است که جالب باشد اگر شما توانستید یک چیز اخلاقی از آن بیرون بکشید آن را به صورتی یک کشتار بخوانید بدانید که اگر مثل من آرزو دارید جامعه ای بنا کنید که در آن افراد با مهربانی و تواضع در جهت خیر همگان یاور هم باشند نباید استوریت انتظار کمترین مساعدتی داشته باشید بیایید بکوشیم مهربانی و از خودگذشتگی را بیاموزیم زیرا ما خودخواه زاده شده ایم. بگذارید بفهمیم ژن های خودخواهن چه می کنند زیرا؟ در آن صورت است که لاعقل این امکان به وجود می آید که طرحی نو در اندازیم، ترهی که تاکنون هیچ موجود دیگری در پی آن نبوده است. به عنوان نتیجه منطقی این بحث در مورد آموزش باید گفت این یک سفسته اتفاقا از نوع بسیار رایج است که فرض کنیم ویژگی هایی که از طریق ژن به ارث میرسند، رسنده تعریف، تعریف، ثابت و غیر قابل اصلاح هم. جن های ما ممکن است ما را خودخواه بار بیاورند. اما ما مجبور نیستیم همه امرزان ها اطاعت کنیم. شاید اگر ما برای ایسارگری برنامه ریزی شده بودیم آن وقت هم همانقدر مشکل بود که غیر از آن باشیم. در میان حیوان تنها انسان تحت حاکمیت فرهنگ است و تابع تأثیری که از آن می گیرد و نسل به نسل منتقل می کنند. از نظر بعضی ها فرهنگ به قدری مهم است که جنها چه خودخواه باشند چه نباشند عملا نقشی در درک سرشت بشر ندارند. ادهی دیگر با این نظر مخالفند. بستگی دارد به اینکه در مناظره طبیعت در مقابل تربیت برای تعیین خصوصیات انسان شما در کدام طرف ایستاده باشید. این بحث ما رو به دومی چیزی که این کتاب درباره آن نیست میرساند. در بحث طبیعت در مقابل تربیت این کتاب به داری از یکی از طرف نمی پردازد. است که من در آن مورد نظر شخصی خودم را دارم ولی آن را بیان نمی کنم مگر در فست آخر کتاب که در آنجا به صورت تلویحی آمده است. اگر واقعا معلوم شود که جنها در رفتار انسان امروز نقشی ندارن. اگر ما واقعا از این نظر در میان حیوانات منحصر به فرد باشیم واقعا بسیار جالب است در باری ای که ما در این اواخر نسبت به اون استثنا شده این چیزهایی بدانیم و اگر گونهی ما آن قدرها هم که فکر میکنیم نیست، واقعا مهم است که این قاعده را بررسی کنیم. سوم چیزی که این کتاب نیست، توصیف جزئیات رفتار انسان یا هر گونه حیوانی دیگر است من بعضی جزئیات واقعی را فقط به عنوان نمونه های روشنگر میآورم. نمی‌گویم اگر به رفتار بابونه نگاه کنید متوجه می شوید که خودخواهانه است بنابراین احتمال دارد که رفتار انسان هم خودخواهانه باشد منطقی است در بحث گانگستر های که به کار می کاملاً کاملا چیز دیگری است این است که انسان و بابون از طریق انتخاب طبیعی تکامل یافتند. اگر به ساز کار انتخاب طبیعی توجه کنید، این طور به نظر می رسد که هرچه از طریق انتخاب طبیعی تکامل یافته باشد، باید خودخواهانه باشد. بنابراین، وقتی ما به تماشای بابون ها می رویم، این انتظار در ما پیدا می شود که انسان ها و همه موجودات زنده دیگر باید خودخواه باشند. اگر این انتظار انتظارمان درست از آب در نیاید اگر رفتار انسان را کاملا ایسارگرانه ببینیم آن وقت تعجب میکنیم و احساس میکنیم لازم است موضوعی روشن شود در ادامه مطلب لازم است نکتهای را شرح دهم در مورد موجودی مثل بابون در صورتی میگوییم دارای ایسارگری است که رفتارش طوری باشد که به بهای گذشتن از خود باعث رفاه موجود دیگری مانند خود شود رفتار خودخانه کاملا عکس این است. رفاه را فرصت بقا تعریف کردم. حتی اگر اثر آن بر چشمانداز مرگ و زندگی بسیار اندک و تقریبت قابل اغماز باشد. یکی از نتایج تعجبابر روایت های جدید از نظریه داربین این است که اثر بسیار ناچیزی روی احتمال بقا میتواند تأثیر چشمگیری روی تکامل داشته باشد. بدلیل اینکه زمان بسیار طولانی که در اختیار است میتواند آن تأثیرات را به صورت قابل ملاحظه در آورد. شایان ذکر است که تعریف هایی بالا از گری و خودخواهی از نظر رفتاریان نه از نظر ذهنی. من در اینجا با روانشناسی انگیزه ها کاری ندارم. در مورد اینکه افرادی که رفتار ایسارگران از خود نشان دهند در واقع آن را بر اساس انگیزه های خودخوانه پنهان یا ناخودآگاه خود انجام میدهند اینجا شاید چنین باشد یا نباشد و شاید هرگز نتبای اینجا تشخیص داد. اما در هر صورت موضوع این کتاب چنین مطلبی نیست. توضیح من تنها به این مربوط می شود که آیا اثر یک رفتار بالا بردن یا آوردن احتمال بقای آن ایثارگر فرضی از خود گذشته و احتمال بقای زینف است که از آن ایسارگری بهرمند می شود؟ نشان دادن اثر رفتار روی چشمنداز بقا در دراز مدت کار بسیار بیجیدهی است. در عمل، وقتی ما این تعریف را در مورد رفتار واقعی به کار میبریم، باید آن را با واژه ظاهرا همراه کنیم. عمل زاهرن ایسارگرانه است که در ظاهر چنین می نماید. که انگار باید فرد ایسارگر را هرقدر کم در معرض نابودی قرار دهد، و فرد بحرمند از ایسارگری را در جهت بقا پیش ببرد. اغلب در بازنگری دقیق تر مشخص می شود که رفتار بظاهری ایسارگرانه در واقع صورتی از خودخواهی پنهان است. بار دیگر اعلام می کنیم منظور این نیست که انگیزه های زیر بنایی به طور پنهان خودخواهانه اند. بلکه می بگویم از سر واقعی آن رفتارها روی احتمال بقا عکس آن چیزی است که ما ابتدا فکر می کردیم. قصد دارم نمونههایی از رفتار بزار خودخواهانه و رفتار به ظاهر ایثارگرانه را ارائه کنم. برای ما سرکوب کردن تفکراتی که به صورت عادت های ذهنی درآمدن آسان نیست بنابراین نمونه ها را از حیوانات دیگر انتخاب میکنم. اول، چند مورد متفرقه از رفتار خودخواهانه در بعضی حیوانات مرغهای دریایی کلسیا در پرگنه های بزرگ آشیانه میسازند به طوری که لانه ها فقط چند قدم از هم فاصله دارند وقتی جوجه ها از تخم بیرون می آین، کوچک و آسیب پذیرند و به راحتی طعمه جانداران دیگر می شوند هر مرغ دریایی به طور معمول منتظر است تا همسایهش لحظاتی نباشد مثلا برای ماهیگیری رفته باشد، آن وقت روی یکی از جوجه های او میپرد و یک لغمه چپش میکنند. به این دردی به یک غذای مقوی و خوب دست میابد بدون اینکه زحمت ماهیگیری را تحمل کرده باشد و بدون اینکه لانه خودش را بی رها کرده باشد. نمونه آشناتر از این همجنسخاری وحشتناک حشره ماده آخندک است. آخوندکا حشرات گوشتخوار بزرگی هستند که معمولاً حشرات کوچکتر، مثل مگس را می‌خورند اما تقریبا به هر چیزی که به جنبت حمله می‌کنند در وقت جفت گیری حشره نر با احتیاط روی ماده می‌خزَد از آن بالا می‌رود و با او جفت می‌شود حشره ماده اگر بتواند حشره نر را می‌خورد اول سرش را گاز می‌گیرد و جدا می‌کند و این کار را وقتی که حشره نر نزدیک می شود یا به محض اینکه روی بدنش خزید یا بعد از جدا شدن از هم انجام می دهد برای ماده بهترین وقت خوردن نر باید بعد از انجام جفتگیری باشد ولی به نظر نمی رسد فقدان سر در حشرات نر مانع از ادامه عمل جنسی شود در واقع چون سر حشره مرکز بعضی اعصاب بازدارنده است شاید تشریع ماده با خوردن سر حشری نر اجرای عمل جنسی او را بهتر کند اگر چنین باشد از این کار یک سود دیگر هم میبرد. سود اول رسیدن به یک غذای درست حسابی بود شاید واژه خودخواه برای توصیف چنین موردی واژه مناسبی نباشد گرچه با تعریف ما دارد شاید رفتار احتیاط‌آمیزی را که از پنگوانهای امپراتور در قطب جنوب گزارش میکنند، بهتر بتوان درک کرد آنها را دیدن که لب آبی ایستادهاند ولی به خاطر ترس از فکهای آبی جرأت پریدن به درون آن را ندارند. اگر فقط یکی از آنها بپرد، بقیه خواهند فهمید آیا فکی در کار هست یا نه؟ طبیعتاً هیچ نمیخواهند موش آزمایشگاهی باشند، بنابراین منتظر میمانند و حتی گاهی سعی می کنند را به درون آب خل دهند. در حالتهای خیلی معمولیتر رفتار خودخانه فقط شامل خودداری از سهم کردن در یک منبع با ارزش مثل قضا، حریم یا شریک جنسی است. حالا سراغ چند نمونه از رفتار بظاهر ایثارگرانه می‌رویم. نیش زدن دفاع جانانه است که زنبورهای کارگر در مقابل دزدان اصل انجام می‌دهند. اما زنبورهایی که این عمل را انجام می‌دهند جنگجویانی انتهاری هستند هنگام نیش زدن های درونی حیات آن از بدن جدا شده و حشر کمی پس از آن میمیرد شاید با این خودکشی او زخیره با ارزش غذای گروه حفظ شود ولی از خود او دیگر چیزی نمیماند که از آن منبع استفاده کند طبق تعریف ما این یک رفتار ایسارگران است یادتان باشد صحبت از انگیزه های آگاهانه نیست هم در اینجا و هم در نمونه خودخواهی انگیزه ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد اما این امر ربطی به تعریف ما ندارد. معلوم است که فدا کردن زندگی خود در راه دوست عملی ایسارگرانه است. اما در این راه تن به خطرهای کوچک سپردن هم ایسارگری محسوب می شود. بسیاری از پرندگان کوچک وقتی پرندگی مهاجمی مثل اقاب را در حال پرواز می بینند مریاد دهنده خاصی سر میدهند تا تمام فوج پرندگان هوای کار خود را داشته باشند. شواهد غیر مستقیمی وجود دارد. حاکی از اینکه که پرندگی دهنده خودش را در معرض تهاجم آن شکارچه قرار میدهد. زیرا با این کار توجه او را به خود جلب کرده است. گرچه این کار تنها افزودن به میزان خطر پذیری است ولی دست کم، در نگاه اول به نظر می رسد که طبق تعریف ما مستاق رفتار ایسارگرانه باشد. معمولترین و آشکارترین رفتار ایسارگرانه در حیوانات در پدر مادرها نسبت به فرزندانشان دیده می شود. مخصوصا مادرها که روی تخم می یا درون بدنشان از آن حفاظت می کنند. از جان خود مایه می گذارد. آنها را تغذیه می کنند و در حفاظت از آنها در مقابل مهاجمین خود را به خطر می اندازند فقط به یک نمونه از آنها اشاره می کنم. بسیاری از پرندگان که روی زمین تخت می یک نمایش به اصطلاح حواظ پرت کنی دارند و وقتی شکارگری مثل روبا نزدیک شود را اجرا می کنن پرنده مادر لنگ لنگان از لانه دور می شود و طوری یکی بال خود را بالا می گیرد انگار که بالش شکسته است حیبان شکارگر به خیال اینکه تعمه راحتی پیدا کرده است. توجهش از لانه و جوجهها پرت می شود و پرنده مادر درست در لحظه آخر پیش از آن که در دهان روبا گرفتار شود به هوا می پرد. این کار احتمالاً به نجات جان جوجه ها می انجامد ولی برای خود مادر خادی از خطر نیست. نمیخواهم با گفتن این داستان به نتیجه خاصی برسم. نمونه های انتخابی هرگز می تواند دلیل محکمی برای یک نتیجهگیری مهم باشد. اینها را فقط به قصد ایجاد تصوری از منظورم، از رفتار خودخواهانه و رفتار ایسارگرانه در یک جاندار ارائه کردم. در این کتاب خواهید دید چگونه خودخواهی افراد و از خودگذشتگی آنها توسط قانونی بنیادی که من آن را خودخواهی جن می نامم، توضیح داده می شود. اما ابتدا باید تکلیف توضیح نادرست خاصی را رو روشن کنم که در مورد ایسارگری است. چون این توضیح را خیلی ها می دانند و در مدارس زیاد تدریس شده است اساس این توضیح برداشت نادرستی است که قبلا به آن اشاره کردم این نظر که موجودات زنده در جهت سلاح هم نوع آن یا صلاح گروه خود تکامل می یابند دراحتی می شود که این نظر از عزیز شناسی شروع شده است بخش مهمی از عمر هر جاندار به تولید مثل اختصاص دارد و بیشتر رفتارهای فدوکارانهی که در طبیعت دیده می شود پدر و مادران نسبت به فرزندانشان صورت می دهند تداوم گونه معادل معدبانی است که معمولا به جای تولید مثل به کار می رود و پیداست که پیامد تولید مثل است اگر کمی با دید بازتر به موضوع دقت کنی، نتیجه می گیریم که نقش تولید مثل تداوم بخشیدن به گونه است. از اینجا فقط یک گام نادرست دیگر مانده تا به این نتیجه برسیم که رفتار جانداران در کل در جهتی است که به نفع بقای گونهشان باشد. به نظر میرسد ایسارگری نسبت به هم گونه خود هم از طبعات آن است. این طرز برداشت را میشود تا حدی با استفاده از اصطلاحات داروینی بیان کرد. تکامل از تاریخ انتخاب طبیعی پیش میرود. به انتخاب طبیعی یعنی بقای مناسبترین ها ولی آیا منظور ما از مناسبترین ها مناسبترین های نژاد است یا مناسبترین های گونه یا مناسبترین چه چیز؟ در مورد بعضی اهداف این موضوع اهمیت چندانی ندارد ولی وقتی صحبت از است مهم است که این موضوع روشن باشد اگر گونه درگیر رقابتی هستند که داروین آن را تلاش برای بقا میده آن وقت افراد نقش سرباز پیاده را در این بازی دارند که هر وقت منافع گروه ایجاب کند باید جان خود را فدا کنند. به هر صورت کمی محترمانه تر می شود گفت که یک گروه مثلا یک گونه یا جمعیت خاصی درون یک گونه که افرادش حاضرند جان خود را به خاطر منافع گروه فدا کنند. در مقایسه با گروه رقیبی که افراد آن به منافع خودخواهانی خود اولویت می دهند کمتر در معرض انقراض قرار می گیرد به این ترتیب جهان پر می شود از گروه هایی که شامل افراد از خود گذشته اند این نظریه که انتخاب گروه نام گرفته مدت از نظر زیستشناسانی که با زیر به نظری تکامل آشنا نبودند، درست محصوب می و در کتاب معروف وی سه وین ادوارس شهر داده شده و رابرد آردی آن را در قرارداد اجتماعی فهم کرده است. شق پذیرفته شده دیگر معمولا انتخاب فردی نامیده می شود ولی من شخصا ترجیح می به جای آن از انتخاب ژنی صحبت کنم. کسی که از انتخاب فردی جانبداری می‌کند ممکن است به بحث بالا بلافاصله چنین پاسخ دهد حتی در اون گروه ایسارگر یقینا یک گروه اقلیت مخالف هست که حاضر به فداکاری نیستند اگر فقط یک شورشی خودخواه وجود داشته باشد که بخواهد از ایسارگری دیگران بهره ببرد طبق تعریف برای او احتمال بقا و داشتن فرزند بیش از دیگران است و هر یک از بچه‌هایش نیز خودخواهی او را به ارث میبرند. بعد از چند است؟ از انتخاب طبیعی این افراد خودخواه آن گروه ایسارگر را برمیاندازند و دیگر گروهشان از گروههای خودخواه دیگر قابل تشخیص نیست حتی اگر ما در ابتدا به گروهها فرصت نامحتملی را اعطا کنیم دیدن اینکه افراد گروههای خودخواه با مهاجرت به درون این گروهها و آمیزش با آنها یک دستی گروه ایسارگر را از بین میبرند ناگوار است کسی که طرفدار انتخاب فردی است بر این باور است که در واقع این گروه هست که منقرض شود و اینکه آیا گروهی از بین برود یا بماند بسته به رفتار افراد اون گروه هست او حتی ممکن است قبول داشته باشد فقط در صورتی که افراد یک گروه از محبت آینده نگری برخوردار باشد میدانند در دراز مدت منافع خودشان در این است که خودخواهیشان را کنترل کنند زیرا به این ترتیب مانع نابودی کل گروه میشوند در سالهای اخیر چندین بار باید این موضوع به طبقهٔ کارگر در بریتانیا گوسر شده باشد ولی نابودی گروه در مقایسه با بحث پرشور های فردی روند کندی دارد حتی در آن زمان که گروه به طور قطع و به آرامی به سرازیری میافتد افراد خودخواه به بهای جان افراد فداکار از رفاه کوتاه مدت خود لذت میبرند شهروندان بریتانیا شاید این آینده نگری را داشته باشند یا نداشته باشند ولی تکامل نسبت به آینده نگرشی ندارد گرچه اکنون نظریه انتخاب گروه در سطح زیستشناسان حرفهای که تکامل را درک کردهاند چندان پشتیبانی ندارد با این حال از نظر ذهنی بسیار است نسهای متوالی دانشجویان جانورشناسی وقتی از دویرستان به دانشگاه میآیند و متوجه می شوند که دیدگاه بنیادگرا غیر از این است تعجب می کنند نمیشوَد آنها را از این بابت ملامت کرد زیرا در کتاب راهنمای دبیر زیستشناسی نفیلد که برای دبیران سطح پیشرفته در انگلستان نوشته شده چنین آمده است در جانداران عالی رفتاری ممکن است به شکل خودکشی صورت بگیرد تا بقای گروه را تضمین کند نویسنده تاشناس خوشخیالی این راهنما کاملا قافل از این واقعیت است که چیز متناقضی را بیان می کند. از این نظر باید بود جایزه نوبل داد. کنراد لورنز در کتاب در باب از نقش حفظ گونه ها در رفتار پرخاشگر صحبت می کند. یکی از این نقش اطمینان یافتن از این است که به مناسبترین افراد اجازه تولید مثل داده شود. این نمونه عالی ای یک استدلال چرخه‌ای است اما منظور من در اینجا این است که موضوع انتخاب گروه به قدری عمیق و ریشه دار است که لورنز مانند نویسنده راهنمای نفیلد ظاهرا متوجه نیست که گفته ای او با اصل بنیادی نظریه داروینی در تضاد است اخیراً نمونه جالبی از همین قضیه که درباره عنکبوتی‌های استرالیا بود از برنامه تلویزیونی بی, بی سی شنیدم شخص متخصصی در برنامه اظهار می‌داشت اکثر بچه انکبوتا سرنجام تعمه گونه‌های دیگر می‌شوند و بعد در ادامه گفت شاید هدف آنها از زندگی همین باشد زیرا فقط کافی است تعداد اندکی زنده بمانند تا گونه منقرض نشود رابرت آردری در کتاب قرارداد اجتماعی نظری انتخاب گروه را جوابوی کل نظام اجتماعی می‌داند از نظر او انسان بدون تردید ای است که از مسیر درست حیوانات خارج شده است. آردری لاقل مشق شب خود را انجام داده است. از این نظر باید به او آفرین گفت. زیرا مخالفت او با نظریه سنتی یک تصمیم آگاهانه است. شاید یک دلیل برای مقبول بودن انتخاب گروه این باشد که با اهداف اخلاقی و سیاسی که بین اکثر ما مشترک است کاملا هماهنگی دارد. ما در جایگاه یک فرد ممکن است خودخوانه رفتار کنیم. اما در لحظات آرمانی تر کسانی که به رفاه دیگران بیشتر اهمیت میدهند قرین افتخار رو تحسینشان نشان میکنیم. البته ممکن است در مورد گستری واجی دیگران مثل هم فکر نکنیم. اغلب ایسارگری درون گروه و خودخواهی بین گروه ها با هم همراه هم و این میشود اساس اتحاد. در سطحی دیگر کل ملت از فداکاری ایثارگرانه ما بهره میشود می شود و از جوانان انتظار می رود که به عنوان فرد از گذشتن جانشان برای افتخار کشور کشور به عنوان کل دریغ نکنند علاوه آنها را تشویق می کنند کسانی را بکشند که چیزی دربارهشان نمیدانند. جز اینکه متعلق به ملت دیگری هستند عجیب اینکه که ای که در زمان صلح افراد را وا دارد با فداکاری کوچک تا حدی سطح زندگی را بالا ببرند، ظاهرا در زمان جنگ کارایی ندارد و جوانان در این وقت باید آماده جان فشانی باشند. اخیرا واکنشهایی در مقابل نژادگرایی و می پیدا شده و تمایلی برای جایگزین کردن کل گونه ی انسان به عنوان هم نوع مطرح شده است. این گسترده کردن دامنه اهداف ایسارگری موضوع جالبی است که باز به نظر می‌رسد همان مفهوم صلاحگونه در تکامل را در بر داشته باشد. آنهایی که از نظر سیاسی لیبرال هستند و معمولاً سخنانوی بسیار پر پرحرارتی در مورد اخلاق گونه ایراد می‌کنند، حالا بیشتر از همه کسانی را سرزنش می‌کنند که دامنه ایثارگری را تا آنجا بس دادند که شامل های دیگر شود. اگر من بگویم به جلوگیری از کشتار نهنگهای بزرگ بیشتر علاق مندم. تا به بهبود شرایط مسکن مردم ممکن است بعضی از دوستانم تعجب کنند این احساس که اعضای گونه خود من در مقایسه با اعضای گونه‌های دیگر لایق ملاحظات اخلاقی خاصیاند احساسی ریشهدار و قدیمی است در غیر زمان جنگ کشتن آدم بدترین جنایت محسوب می‌شود. تنها چیزی که در فرهنگ ما بیشتر از آن منع شده خوردن آدم هاست حتی اگر مرده باشد اما ما از خوردن اعضای گونه های دیگر لذت میبریم و بسیاری از ما برای مجازاتی که قاضی ها برای جنایات وحشتناک تعیین میکنند به لرزه میافتیم ولی با کمال شوق شکار حیوانات نسبتا آزار را تأیید میکنیم. کنیم در واقع نا را میکشیم تا تفریح کرده و سرگرم شده باشیم جنین انسان که بیشتر از یک جانور ای چیزی از دنیا حس نمی کند از احترام و حمایت قانونی برخوردار است خیلی بیشتر از حقی که به یک شامپانزه بالغ داده می شود گرچه آن شامپانزه هم حس دارد و فکر می کند بر اساس شباه علمی جدید شاید حتی قادر باشد صورتی از زبان انسانی را یاد بگیرد چون آن جنین به ی از ما تعلق دارد، در جا حقوق و امتیازاتی شامل حالش می شود. این را که بتوان اخلاق به قول ریچارد رایدر نو دوست را به شکل منطقی در از نجات پرسی ارائه کرد، من نمی‌دانم. فقط میدانم که چنین چیزی در زیست شناسی تکاملی بنیان درستی ندارد. به هم ریختن اخلاقیات انسانی و بردن آن بالاتر از که در آن از خودگذشتگی مطلوب است، خانواده ملت نژات گونه یا همه موجودات زنده را می توان مشابه با به هم معادل آن در زیست شناسی دانست که در آن از خودگذشتگی قرار است با نظریه تکامل مطابقت پیدا کند حتی کسی که انتخاب گروه را قبول دارد از دید رفتار بد اعضای گروه رقیب نسبت به دیگر تعجب نمی‌کند. به این ترتیب مانند اعضای یک اتحادیه یا سربازها هنگام دستیابی به منافع محدود آنها به اعضای گروه خود اولویت می‌دهند. اما آن وقت جا دارد از شخص طرفتار انتخاب گروه بپرسیم چگونه تعیین می‌کند کدام سطح از همه مهمتر است؟ اگر انتخاب بین گروه های درون یک گونه و بین گونه ها صورت می چرا این روند بین گروه های بزرگتر برقرار نباشد؟ گونهها ها با هم یک جنس را به وجود می آورند جنس ها با هم یک تیره و تیره ها با هم یک رده را تشکیل می دهند. شیر و آهو هر دو مثل ما عضو رده پستان هستند آیا باید انتظار داشته باشیم شیرها به خاطر سلاح پستان پستاندار از کشتن آهوها سرف نظر کنند در جهت حفظ و حمایت رده خود از انقراض حتما می توانند به جای آهو پرنده یا خزنده شکار کنند اما آنگاه در نیاز به بقای کل شاخه مهر چه باید گفت من به راحتی می توانم با استفاده از برهان خلف استدلال کنم و مشکلات نزدیکی انتخاب گروه را مد نظر قرار دهم اما هنوز باید وجود ایثارگران آشکار در افراد را به نحوی توضیح داد. آردری تا آنجا پیش می رود که می‌گوید انتخاب گروه تنها توضیح ممکن برای رفتاری مانند پیشمرگی در قضالهای تامسون است. جهیدن پر انرژی آنها جلو چشم شکارگر قابل مقایسه با فریاد و آن پرنده است. از این نظر که زمن با خبر کردن همراهان از خطر توجه حیوانات مهاجم را به خود جلب می کند. وظیفه ما این است که این پیشمرک ها و همه پدیده مشابه آن را توضیح دهیم. من چیزیست که من در فصل بعد با آن می پردازم. پیش از آن باید دلیل خود را بیان کنم که چرا؟ بهترین طریقه نگاه به تکامل این است که سطح انتخاب را پایین ترین حد ممکن در نظر بگیریم. این باور من تا اندازه زیادی تحت تأثیر کتاب با ارزش سازگاری و انتخاب طبیعی اثر جی سی ویلیامز بوده است. قبلا وایسمان با آن مفهوم اصلی که اینجا مرد استفاده قرار می گیرد در ایام قبل از پایان قرنه گذشته به عقیدهش به تداوم ماده حیاتی زایشی اشاره کرده بود. من استدلال خواهم کرد که واحد اصلی انتخاب و بنابراین واحد منافع شخصی نه گونه، نه گروه و نه حتی خود فرد بلکه جن این واحد وراست است. ممکن است از نظر بعضی زیزشناسان این دیدگاه افراتی باشد ولی امیدوارم وقتی به موضوع با همان مفهوم که مورد نظر من از دقت کنند میپذیرند که اصل قضیه همین است حتی اگر به زبانی غیر معمول بیان شده باشد بیان این استدلال زمان میبرد و ما باید بحث را از آغاز آن شروع کنیم یعنی از خواستگاه حیات ژن خودخواه پینوشت فصل یکم در پاسخ به این سوال که ما از کجا آمده ایم؟ در توضیح اینکه همه تلاشها مربوط به پیش از 1859 برای پاسخ دادن به این سوال حالا دیگر اعتباری ندارد توضیح این نقل از سیمون برای خیلی ها، حتی آنهایی که مذهبی نبودند ناگوار بوده است این را قبول دارم که وقتی بار اول خوانده شود خیلی دور از فرهنگ و ناپخته و مقرزانه به نظر می رسد. کمی مثل جمله هنریفورد است که تاریخ کم و بیش حرف مفت است اما جدا از پاسخ باورمندان به آن آن را می دانم و بهتر است به کار خودم بپردازم واقعا پاسخهایی که پیش از داروین بود به سوال انسان چیست؟ آیا حیات معنا داره است؟ و چرا اینجا هستیم؟ داده شده آیا غیر از جنبه تاریخی ارزش دیگری دارند در مورد بعضی چیزها میگوییم کاملا اشتباه است و این دقیقا در مورد پاسخ‌های قبل از 1859 با آنسوآلد ها صدق میکند توضیحی درباره اینکه من از اخلاقیاتی که بر مبنای تکامل باشد جانب داری نمی کنم بعضی منتقدان به اشتباه تصور کردهاند ژن خودخواه از اصل خودخواه بودن طرفداری می کند و ما باید آنطور زندگی کنیم. عدی دیگر، که اتمالا فقط عنوان کتاب را اند و به دو صفحه اولش نرسیدهاند فکر کرده اند من میگویم چه بخواهیم چه نخواهیم خودخواهی و دیگر رفتارهای رزیلانه جز لایم فک سرشت ماست. اگر تصور ما بر این باشد که جبر ژنی همیشگی مطلق و تغییرناپذیر است راحتی ممکن است دچار اشتباه شویم چنانکه ظاهرا بسیاری شده شدهاند در واقع ژنها در یک مفهوم تقریبی در تعیین رفتار نقش دارند یک نتیجهگیری تقریبی این تعمیم کلی را به دست داده است که اگر سر شب آسمان سرخ باشد خوش به حال چوب شاید از روی واقعیت هایی که عملا پیش آمده بتوان گفت که یک غروب سرخ خوش رنگ خبر از هوای خوب روز بعد می دهد. اما ما زیاد نمی روی آن حساب کنیم خوب میدانیم که آب و هوا به شکل بغرنجی تحت تاثیر عوامل مختلف است و هر پیش در مورد آن ممکن است غلط از آب درآید بینی ها فقط از روی آمارند، اینطور نیست که هر غروب سرخ رنگ قطعا هوای خوب روز بعد را رو به دنبال داشته باشد. در مورد ژن هم اینطور نیست که چیزی بیچون و چرا تعیین کننده باشد. به راحتی ممکن است تاثیر ژن های دیگر تاثیر ژنی را عوض کنند. برای بحث بیشتر درباره صلاح ژن و اینکه ریشه این سوء تعبیر ها کجاست به... فصل دو کتاب رخنمونه گسترش یافته و به مقاله من شناسی زیست طوفان نور در خانه مور مراجعه کنید مرا متهم کردهاند که میگوید انسانها همه در اصل گانگسرهای شیکاگواند منظور اصلی من از قیاس با گانگسرهای شیکاگو در صفحه دو بیشک این بود آدم میتواند در مورد شخصیت کسی که درباره شرایط زندگی و شدن او چیزی میداند زنی هایی داشته باشد این بحث ربطی به ویژگی های خاص آن گانگ سر ندارد می توانستم از تشبیه به کسی که در کلیسای انگلستان مقام بالایی دارد یا از شخصی که به عضویت یک انجمن فکری بسیار معتبر رسیده است استفاده کنم در هر صورت این جن بود که مورد مقایسه قرار گرفت نه آدم در مقالی با عنوان در دفاع از جن خودخواه، این موضوع و دیگر برداشت لفظی خیلی نادرست را توضیح دادم و نقل قول فوق را از آن برداشتم. باید اضافه کنم، هاشی سیاسی در این فست باعث می شود خاندن دوباره آن در 1989 برای مشکل باشد. جمله نیاز به سرکوب کردن خودخواهی برای مانع شدن از نابودی کل گروه را در سالهای اخیر بارها به طبقی کارگر در بریتانیا تذکر دادن این جمله مرا مثل اعضای حزب محافظ کار به نظر می آبرد. در 1975 وقتی که این جمله نوشته شد آن دولت سوسیالیستی که من برایش رحی جمع کرده بودم نامیدانه با تورم 23 درصد در مبارزه بود و آشکار نگران درخواست برای حقوق بیشتر بود احتمالاً سخنم را از روی سخندانی وزیر کار آن زمان برداشته بودم. اکنون که بریتانیا دولتی با اختیارات جدید دارد که رزالت و خودخواهی را تا جایگاه جهانبینی بالا کشیده به نظر میرسد سخن من تدایی نوعی پستی و جای تصاف است. منظور نیست که حرف خود را پس بگیرم. کوتنگری خودخواهانه هنوز همان اواقب ناخوشایند هم را که گفتم دارد. اما من این روزها اگر کسی در بریتانیا دنبال پیدا کردن کوتاهنگری خودخواهانه باشد، لازم نیست اول به طبقه کارگر رو کند. در واقع بهتر است اصلا هاشی روی های سیاسی را وارد کار علمی نکنیم، زیرا مشخص است که این امور خیلی زود کنه می امروز وجود نیش و کنایه های از دور افتاده دانشمندان دارای آگاهی سیاسی در سالهای 1930، مثل جی بی سی هالدین و لنس توگبن آشکار از ارزش کارشان کاسته است در صفحه پنج گفته شد شاید حشره ماده با خوردن سر حشره نر اجرای عمل جنسی او را بهتر کند توضیح من بار اول وقتی از این واقعیت عجیب درباره حشره ماده با خبر شدم که یکی از همکارانم درباره مگس کادیس یک سخنرانی پژوهشی داشت. او گفت کادیس‌های آزمایشی زاد و ولد کنند ولی موفق نمیشد آنها را به جفتگیری وادارد. با شنیدن این موضوع یک استاد هشر که در ردیف جلو نشسته بود طوری با بدخلقی گفت سرشان را نکندی که انگار این طبیعی ترین کاری بود که باید صورت می گرفت. پس باید سرکنده شود. توضیح عبارت واحد اصلی انتخاب نگونه است نه گروه و نه حتی خود فرد بلکه ژن است از زمانی که منشور انتخاب ژنی را نوشتم درباره اینکه آیا امکان دارد نوعی انتخاب در سطحی بالاتر هم گاهی طی دوران طولانی تکامل رخ داده باشد اندیشیده ام هم. همینجا باید اضافه کنم که وقتی میگوییم در سطحی بالاتر مزورم اصلا انتخاب گروه نیست. مزورم چیزی بسیار جالبتر و ساده تر از آن است. حالا احساسم این است که نه تنها بعضی موجودات زنده از بعضی دیگر بهتر باقی می بلکه کل یک طبقه از جانوران ممکن است بهتر از بقیه تکامل پیدا کنند. البته تکامل پیدا کردن که اینجا مورد نظر است همان تکامل قدیمی و آشنای ماست که از طریق انتخاب ژنها پیش می هنوز جهش‌ها به خاطر اثری که روی بقا و موفقیت در تولید مثل افراد دارند در انتخابها مورد عنایت هستند تا یک جهش کلی جدید در برنامه اصلی چنین شناخت نیز میتواند دریچه ای نوعی را برای بارش تکامل در میلیون سال آینده باز کند برای چنین شناسایی که از تکامل حمایت میکند شاید انتخابی در سطح بالاتر هم وجود داشته باشد انتخابی به نفع تکامل پذیری این نوع انتخاب حتی ممکن است انباشتی و بنابراین تدریجی به شیوهی برخلاف انتخاب گروه باشد این نظر را در مقاله تکامل و تکامل پذیری بیان کردم. این مقاله را بیشتر با الهام از یک بازی کامپیوتری به نام ساعتساز نابینا نوشتم که در آن های تکامل در یک ریزی کامپیوتری شبیه سازی شده بود